والله در الله و یا بود یکی هم راجب موضوع که متعرض شدیم تا اینجا از کلمات مردم شیخ که در تقسیم سه از مردم مجلسی عبارت نقل کرده و بعد متعرض کلمات استاد و اصرار ایشان که حقیقت سه امر غیر واقعی است و چیز نداره به اصطلاح واقعیت نداره و امره رحمی و سیادی استعال ایشان که باز بقیه معانی یا سه نیستن یا به تعبیر ایشان به همین برگردن ما برای باز توضیح بیشتر مطلب که جهات به اصطلاح ما فنی و قانونی هم داره یه مقداری باز بیشتر بخونیم به قبارات اعلام رو لیکن این دفعه یک مقداری تر ببینیم یعنی به جای اینها یک مقداری دور بیشتری می دهیم تا ببینیم که قبلا چی از کسانی که در میان علمای ما متعرض بحث سحر شدند و حدودش رو به بررسی کردن مرحوم شیخ طوسی مرحوم شیخ توصی در کتاب همون حدود و قتل و اونها به تازه متعرض بحث سر شدن بحث کفاره قتل کتاب کفاره قتل و, کفار و حسب این نسخه ای که الان دست من هست این نسخه‌ای که زمان مروای بروژزی برای اولین بار از کتاب این چاپ جدید شده یعنی تا قبل از این کتاب همون یک چاپ قدیمی داشته است مرسوس مرمه آقای بروزی چار شد خیلی هم قدر قلود داره کتاب یک جدول سواب و سعید داره خودش نوم بیس سفر تر قلود میشه برادم به این که بعد هم اخیرم باز به چافه دیگه کردن که خب زحمتی بیشتری کشیدیم مرمومه از کردم اهل سنت را زیبسته در بخش که صاحب یکتر در اونجا متعرض شده. شیخ توسی هم از اونجا در همین بحث در, در این کتاب چاپ قدیم است چاپ این قدیم قدیم این در جلد دو صفحه 423 به بعد مسئله 14 از کتاب کفاره تطهر در اونجا ایشون ترجمه یه مقدار روایت میخوام بخونیم برای وقت این نشون میده که این نحوه بحث راجع به اقسام سه و حیرت صحبیه این نحوی بحث توسط شیخ توسی در حقیقت به کتب ما مبارد شد ما قبل از این نحوی بحث رو نداره حالا من در خلال بحث با دیت حوضیح دیگر از می در این مسئله چهارزه ایشون پرموزن که از صحب رو لبو حقیقتون صحبی همه و, و یا صحب همینو ها انیفت ده می تونه حقی بکنه این ببنده و یرقی و رویه بخونه که عرض کردیم دعاها یا اردعاها بر اینکه که آثار رو باطلیم و یفت هر یا سه رو بکنه فیق طور و یمرز و بکشه با سهر تسیر بکشه یا مریض بکنه یا یک رعال عیدی یعنی دستخاشو ببنده و یفتر رو بین الرجل و زوجه تشاره از مرحوم شیخ این امر حجیست میتون این کارها رو انجام بده نظر فوارج رو دیگه کنه بکشه کسی رو اون نکته ای رو که اینا مرحوم شیخ در اینجا آورده که در حیال از کتب اهل سنت یه نکته ای است که بین دو تا بحث رو جمع کرده من همیشه عرض کردم خوب دقت بکنید مسائلی که ما داریم بعضی هاش انفرادی هستند بعضیش ترکیبی هم خیلی از مسائل ما ترکیبی هم اصلا این جا اثر حقیقت داره یا نه یه بحثه اینو ما میگیم افرادی مسئله مفرد خاص خودش موردیه خودش یعنی افرادیه یه بحث دیگه داریم ما در باب قتل که در باب دیه و تصادفی رخ اعصاره شده اون بحثی که قتل عمد چیه مثلا فرضشون با اساس در توی سر یه. کسی تصادفا مرده حالا خود علما رو به جوای شما اول این قتل اند حساب نمیاد خب زنده دیگه زنده زد فعل که مثلا در در قتل عام شرط مثلا alat و قتاله باشه باز شرط مثلا باید اون ترچیز مثلا قصد قتل داشته باشه نه قصد فعل اگه قصد فعل داره مثلا قصد داره با عصا اون رو بزنه قصد فعل داره اما قصد قتل نداره نمیخواد بکشه در این بحث خودش در محل خودش که بحث قتل اصلن چیه در او چه معتبره در اونجا معتبره یه بحثی دیگه میاد ترکیب میکنه دو تا مسئله رو با هم ترکیب میکنه مثلا کسی رو سه کرد کش ببینید این هم میاد از اون مسئله که سر حقیقت داره یا نه هم با این مسئله که اصل امر چیه ترکیب کرده این در فقه من میگم رمز فقه رو بدون بگم در فقه وقتی فقی میخواد فتوا بده باید هر دو نقطه رو در نظر بگیره یک مسئله سهر و حقیقت داشتن دو مسئله قتل و قتل هم چیه مثلا اگه نظرش این باشه که قتل هم باید با آلات قتاله باشه خب میان سهر آلات قتاله نیست این که ایشون میگه فیقتول این دو تا مطلب داره ولیذا در مسئله بعدی هم اینشالا میاد بله مثلا اضاعقر و انهو سهر فقط حلید سهری متعمدن لا یکی با علیه قبض قصاص لازم نیست با اینکه که نسبت داده، احضی نسبت داره اشکال کجاست؟ اشکال این است که صح جزو آلطا قطاله نیست بزن یعنی خیلی دقت بکنید در مسائل فقری ما خیلی از مسائل فقری ما ترکیبیه یعنی یک مسئله از یک جاست، یک دیگه از یک جاست. اون نتیجه گیری تابع هر دوست مثلا اگه ما گفتیم قصد قتل داشت همین کافی در حالا با سر که کافی این قتل همده اما اگر ما در قتل گفتیم باید آلت قتل همد باشه مجرد که قتل همد داشته باشه کافی نیست باید آلت قتل همد صده بکنه خب سر جز آلت قتل همد نیست پس قتل همد نیست از طرف دیگه هم خب میدین در باب دماغ به طور کلی احتیاط بطلوبه ال حدود طرا و شبهات. یعنی میان مجموعه عوامل رو در نظر میگیرن طبق اون مجموعه حفظ فقه ترکیبی اینطوریه فرقش با فقه عادی خیلی یعنی در اینجا این که آیا خبر که اصطلاحا تفاص باشه این تابع دو نقطه هست نه تابع یک نقطه بعدا ممکنه حتی لایجه قبلش تابه احتیاط باشه یعنی شک کن که بکنی تو در حدود به شبهات خونه کسی رو به به شبهه نمیشرید اصاف برگرده هم به دیگه مثلا. این نقطه رو خوب دقیقه بکنید این که چهر یه سهر و لحه و حقیقت روان فیهت رو, آن رو چون حقیقید ممکنه بکشه ممکنه مریض بکنه در و پایشو ببنده یا فرقه بین ال رجل و زوجه یکی دیگه از فروع اینا فروعی بوده که در اهل سنت مطرح بوده در کتاب اهل سنت آمده شیخ از اونها گرفته بعد تفریه شیعی رو کرده این نکته رو خوب دقیقه رو کنید اصل کتاب خلاف این طوریه مالی که از اهل سنت بوده شیخ از او گرفته و بعد رأی شیعی رو گرده بعد من جمله از موارد سه که از اهل سنت هم هست و یک تفق قلعه رو هنی از حربل اراق رجلا دو خراسان خودش مثلا در اراقه یک نفر رو در خراسان سهر بکنه فیقتلو فی... این هم همین بخص یه آقام برای فلانی سهر کنه مرده آیا قصاص میشه یا نه؟ آیا دیگه داری یا نه؟ چون دو بخص منوش درست این, این بخص نصفش به قصاص برمید یعنی نصرش هم به سهر اون نسی که به قصاص برد نشون آلت کشتالی اینها نبوده. اون نسی دیگری که به سر برمیگردن تأثیر سیر با طول مسافت هم تأثیر میکنه یا نه؟ یعنی مثلاً چهشک بخت بحث چشم بودیم. نگاه کرد به طرف چهشک زد، افتاد. این درست. اما یکی دیگر در قراصانه، در اون بر کره زمینه. آیا اینم مثل چشمه میتونه تغییر ماشوای به دستش ایلیزه مثلاً چی دی به دستش اون تلف بکشه؟ پس یک آیا این قفله هم دو آیا تاثیر سه محوط از یک حد محدود نیست که مقابلش باشه؟ اگر خاصله پیدا کرد دیگه سه نیست اگر خاصله پیدا کرد این دیگه سه نیست ایشون بگه بایدتر بخواده بود انیس هربل اراق رجلن به خراسان تا بود بعد از این که این مطالبی از سهرونه خواهجاتون بعد بگه انده اکثر اهل الایم از سر علمای اهل سنت، ارز کلام مراد از کلمه ایم در اینجا و مراد اونه که اهل حدیث میستن یعنی کسانی که قواعد اصولی رو قواعد ببکنی کنند دو محققین اصولی و بحثای اصولی رو بازه فرد کردن ابی حنیفه و اصحابهی مالک و شافعی و قال ابو جدر اصطرابادی من اصحاب شافعی لا حقیقت لحظ شبیه رعی های خویی که نحب کردن و این تخییلون و شعبدتون و به یه قال المغربی من حرهای ظاهر از ظاهری ها را بعد خود مرحوم شیخ تلسی می فهمد وحوال لذی یقوافی حالا اول رو تنسیه لوا حیفتون بعد بر میگردن میان وحوال لذی یقوافی نفسی صحیحه پیش من هم که سه واقعیت نداره ارز کردن اونی که شواهی در در کتاب چیزی هم داره در کنار مخصوص هم داره در خلاف هم داره در کتاب کتابای دیگه شیخ نیست اینطور یه چیزی رو اول میگه انسان خیال کردن ابول کرده بعد برمیگرده این جاده در الی موعدم داره اول گویا از شهر رو لغو حقیقتون بعد بر میگرده که نه قال فلان لا حقیقت له وهو الذي يغوق فی نفسه این بابت دیابوقینه چیزی اینطوری بوده به قول امروزی ها تعلیقه بوده حاشیه بوده هم متن اول من که كلام که مال برده از علمای اهل سنت بوده اه این دومیش که بحوالل یقوافینسی حاشیه بوده یکی از این آلمعاصرون مثلا توی در قاموس هر هرج یک اختلاط نسخه ای رو پیدا میکنه میگه ظاهرا این در حاشیه در متن داخلش کنده نسخه این شفابخش اینجوری هم جا حالا این مطلب رو همجوری که اینجا آورده اما اضافه گانی اینجوریه یعنی این مطلب به نظر من اینطوره اگر این بحوالل یقوافینسی چاپ امروز میشد یعنی اون کتاب میامد کتاب است این عبارت در نوشته نمیشه میشد شبهی نداشت الان انسان میکنه کنید آرز گفته نه اون اصل کتاب بوده باقو بلدی اقوافی نفسی این تعلیق شیفه و یه درد و علا ذالکه قبله تعالی که قصه فرعون و سحرف الاحبال هم و اسی هم یخیلو علیه من سحره یه از کلمه یخیلو علیه گرفته انها تسعا فا او جسفی نفسی خیفتن موسا ایشون می فهمه داله که انرقوم جعلو من الحباب جهی عطل عقار حیات و طلو طلا یعنی به اسطلاح مالیدن ظاهری البته در اصطلاح طبی بیشتر طلا به جایی گفته میشه که به اسطلاح مایه تقریبا جنبه چیز داشته باشه مثل کرم به اسطلاح معجون اون مالی که روی مثلا کا می مادر مریض باشه انواع مختلفه در به قدیم انواع اسمش می‌ذارن هیچ طلا طلا اینطوریه در ازشون مثلا طلا اون چیزی که مثلا با آب باشه اما من فکر کنم طلا بیشتر نکسسس باشه صرف باشه وها میگن اگر کمی شور باشه طلا میگن یا بعضی گفتن با آبکی باشه اینا تمام حدود این نحره استعمال در کتابات قدیم شرح داده شده تلا و علیها زیبر، زیبر همون جیوه هست جیوه رو اون مالی کرد. بله و آخر و الموعه ده بناشون این که شد که وقتی تطلع و فی شمس بله حتی ادابه حتی شمس على زیبر تحرکه این تحرکه نوشته یا با تحرکت باشته چون به حبار و اسی میخوره یا تحرکه بکنیم بسیقه این که تا یک تاش افتاده این تحرکه این الا تحرکی که جگر نمیاد می یا باید تتحرکه باشه یا تحرکت باشه ف خود یهله موسا انها حیاط و تصعب یا ماه راه میگرد و لمیهکن ل ها حقیقتون بعد ایشون که خوب های فرتون سهر حضرت موسا اینطور بود بعدشون اضافه میکنه و کار ها دا فی که اشد وقت سهره در عشد وقت سه یه سه خیلی قریبوزه این بوده پس به باید سه بر عذب پرسیم یه عذبشم و فعرقا موسا اصاف فعبتل علیه به این وجه اول از کل در خیلی از استدلال هایی که در کتاب قوم آمده حتی مسائلی که جمعه علمی داره استشهاد به قرآن می شردن. حالا ممکن است کسی بگه ما در مسائل علمی استشهاد به قرآن نمی‌کنیم. اما اون زبان متعارف بوده کنه و ایدن این دلیل در دوم فه این من نام لا یسله انیف علفی غیرهی این عبارت رو از کردن این همون عبارت بود که متکلمی در سه رو در چشم هونگی گفتنین چشم تو رو تأثیر میکنه در سالی که بین این شخصی که چشم میزنه با اون شخص اقتصالی نیست لا یسله انیف علفی غیرهی ولیسه بینه و بینه و اتصال این همون نقطه است در عبارات فخر وازی و دیگران خونده دیگر ولد تصال به ما تصاله به ما فعلفی نگی که اون دعایی که کنون اون تاثیر اون دعایی اون نفس باشه اون کار اتصال پیدا نمیشه فکیفه یفعل و منحور به وقت داشتی به بالخراسان یا بالحجاز روشنیش تو چی مخاد بگید؟ میگه اگر مقابلش هم باشه اتصال دید از مخاد به خراسان باشه؟ حالا عجیب اول که احوالات روزه انسان خیال میکنه درست قبول داره بعد رد میکنه بعد خودشیق رد میکنه و اب ادمنها و لا ینفی حالا قوله تالا و لا که نشیاتین کفر و یا علمونن نه ناسه هسته که لا یوم قبول داریم که شیاتین تحریم سلم و من هلذی منه نامن انیو اثر از تأثیر هلذی یدعونه هون اون تأثیر که اینا ادعا فعلاً ان می‌کند. مَا اگر این کار را مَا يَتَخَيَّلُ این کار فَلَا انجام می‌دهد، این کار را انجام می‌دهد، این کار را انجام می‌دهد، این کار را انجام عن این از را انجام می‌دهد، این کار را انجام می‌دهد، این کار باعید واسه اون فقرا ایامند خودش دلیل قرار گذاشتن هم ایام و هم شیش ماه گذان فاصله شون خیلی زیاده بخیال الیه انه یاتی نشا لا یاتی انخیال میکنه مثلا نزدیک یاد هر چند روز میذ یعنی انصافا هم شیخ خدا به اون رویا اومده احتمالی هم داره که مثلا مدتی رسول الله به عایشه محمد نمیذونه مثلا مثلا مثلا وزکر تمام حدیث بله بعد درست. و رما ما زیادم نه. اردام سهر رسول الله. سال الله علیه و الله رجول من اليهود از کند بگید نآسند است. و شکم من دل که ايامش شکل شک در اين جري مريسته. ايامشان بيهاش شدن فعطا و جبرئي از اين مطلب ميتونیش خوندي. یک حرف نیومه که میتونه مختلف بیاد ازونیم. فعلا هو من اليهود سهر که و ارد لک اردام في بیل كذاب خوندیم دی مفن و خصوص یادش شد سنگ روززی سنگارش. سنگ بحث صلی تا خرجه و کل حل عقدل من وجد رسول الله راحتن یازده تا گر زده بود. هر گرره باز میکردن از آرامش. فقط مححل کللف کند ما نوشاط من که اصطلا چه شطور چطور پاش می بن؟ چطور ماستن ت حال وقتی میشست دستش رو تو و تناب میبستن نمیتونه سکان بخوره وقتی که باز میکنه اقال رو برم میشه این استلاحی توی دارم وحادا نستون نستونست برای این که سرخ شده پس حقیقت داره بعد باز خود شیخ میگه از شیخ اینجور داره احتمالاً به قول ها اینا حاشیه بوده بعد تو مرد داخل شدن بعد شیخ میگه وحادیه اخبار آهاد نا یوم ملا که ها اصول المنا امیدونه که بحث اص شیخ حرفاش واقعا مشکله این رو یه اخبار آهالای اومد از اینجام عمل میکنه از اون بر و ان این آئشه انها قال از صحر رسول الله پیغمبر رو سهر کردن فلم یعمل پیه سهر این رو من الان ندیدم آه. این مطلب رو سابقا هم اشاره کردن که شیخ ما آرزی نردو میکنه وحادا یعارد داره بله یک مکنی دیگه در میان اهل سنت هست که رسول الله رو سهر کردن نه اینکه که بر مثلا دیگه شد نه احساس سنگینی میکنه خود دقش بکنید الان شیخ اینجا نار کرده اون از آیشه نیست این آیشه انها رسول الله صلی الله علیه و عالیه فرم و. این هم نمیدونیم می‌شه اگه میگم معارف فرض باشه مثلا فرض کنیم دیگه قابل جمع خیلی مشکل دیگه اون رو وقتی بیا سر رسید مثلا پیغمر میگم من غذا خوردم نخورده بود خب خیلی عجیبه یه سری یه درکی از حدود این شرایطشه مثلا خوابیدم نه خوابیده غذا خورده بودم نخورده بودم آب خورده بودم کسی این کارو میکنه انسان یه حالتی بیشترش میشه چه رس این فکر میحالدی کار انجام ده انجام نداده بود. اونم برای تاثیر بالا درشته بود. نه، اینکه سنگین مشه که احساس دیحالی بکن نه اینکه اینجوری. این یه بودیه جواب دیگه کلا یه عمل فی است. بودی دیگه که سر در اون تاثیر نکن از کردم این مسئله محل خلافه و من توضیحاشو از کردم. در میان خود اهل سنت ایدهشون قبول نداری معنا رو. ولی از صحیح هم وارد شده. قبول ندارن؟ تو روایات ما هم تصریح به نقیه این نکده البته روایات سنیه هم ما نداریم روایات سنیه ها جبیه این نداریم تصریح به نقیه هم نکده اده از علمای ها فی ما برد از علمای احسان هم ممکر شده لیکن این مضمونی که شیخ اینجا را من فعلا در روایات احسان هم نگیدم از آیه شیخ در که صحر رسول الله فلا نه که این کاری رو که مرحوم شیخ در اینجا کردن اون نزاعی رو که تا اون زمان راجع به سهر بود ایشون میان شیعه کشیدن قبل این کار مهمی شیخ این بود این نحوه بحث به شیعه اون را مطارب نبود البته در کتاب احتجاج که ست سال بعد شیخ نوشته شده یه روایتی بود از ما مصادر نمیم که سهره و اقسام شیخ اونم اینجا نهاره بوده. کاملا اینجا واضحه که متن محطین رو از اهل سنت رو ارزه بعدم خود ایشان رد کردن قبول نکردن ظاهرش این نتیجیش اینه مثل نهایش. که سر حقیقت برداده همه خیالاتیه این راجع به یک قسمت از بله مطالبی رو که مرموم شیخ راجع به سر برده و طبیعتا این چی شد به خاطر ارزم من اخیران تو بحث اجماع توضیحاتی رو ارز کردم. خیلی از این مطالبی که بعض مطرح شده ریشه به شیعه نداره. و راه درستی هم هست یعنی واقعا در حوزه های علمیه شیعه مثل قوم تمام علم فقط به هم مقدار موجود روایات بود. شک دنجار چون خودش تو درس های ما هست با یک افق باز یعنی مطالبی که در اون زمان در بغداد در که واقعا بغداد بعضی گفت که قلب تمام دنیا بود در آن زمان مطبع بود شیخ با یک افاق بازی وارد اون بحثا هم شد که این واقعا نشون میده که به اصلا راهی رو کشیه به انتخاب کردن به همین راه بارد منتقی بشه راهی رو که برون شیخ خب تباید در این زمان ما باز قضایی ها کلن کرده یعنی اگر بخواد کسی وارد خیلی از ابحاظ بشه مثل زمان شیخ در قرم پنجم امروز ما 15 هستیم. 1434 هستیم احتمالا شیخ اینا 420-43 نوشته هزار سال گذشته باز همین نیاز هست همین احتیاج و مسئله رو احساس میدونی بعد مسئله بعدی که بارد بحث فرق شده من سهل عمل از سرق و کافرون و وجه و قتله اینم نوشن بلا خلاف احتمالا بلا خلاف هم از خود احسان ندرسه شده این لا اجماع اصحاب ما نیست چون ما نداریم مسئله نداریم و منلب از تحل ده او، کسی که نگه حلاله و قال نهو حرامه ها و حرامون الا عنی از تعمل اونی از تعمل او کان فاصلن لا جبه قلق و بهی قال ابو و حنیفه و شافری و قال مالک از سااهره زندگی خو دقت میکنه تغییر نکرده کافه رو تغییر نکرده مرتد تغییر کرده زندگی بود ما حالا جز بحثش اینجا نیست یه بحثی رو یه وقتی محبت کرده این تشار این الفاظ در اون زمان فرق می کرده احتمال قوی داره که زندگی یا حالا جز بحثش اینجا نیست از کلمه زنده دین باشه زردوشتی بودن اصلا مثلا... کسان بودن مجلسی بودن این تفکر انتشار تشار زنادقه مالک در برساز 16 و خوردهی فرد افتار 16 افارشه از سال 128 متاسفانه در کوفه که ایرانیا بیشتر بودن دقیقا از سال 128 یه گروهی پیدا میشن که نفقط این کار شیعه از دیگه، یه نوع تفکرات مثلا پس کن با قول اموزیان مثلا شیطان پرستی با قول اموزیان. آتش پرستی اینها هم آمیخته بوده شون ایرانی ها بیشتر که در اران بودن کار میکردن مجوسی بودن زرداشتی بودن و هر حال این تفکرات و بیگنها نسبت دادن و اینها تقریبا فقط در این حد نبود که کافر باشن در حکم محاربه و در حکم به اصطلاح اموزی ما تشکلات و تحضبات فکری درست بکنن برای مبارزه و نفی اسلام اینا به اصطلاح هم زندگی هم باشه زندگی اصطلاح هم این بود و حرکت علمی و حرکت اجتماعی و حرکت سیاسی و تحزب و گروه و دستبندی و بعد هم مثلا دیم که در بعض روایت ما داره که بعض از اینها عامل تا در روایت ما هستند. مثلا میاند بیجا جمید حساب ظاهر سلاح بود کتاب جمیدی میگردن تو کتاب جمعی بعض روایت اضافه میکردن بعد این چنینی که کتاب برمیگشتن چنینی که نگاه نمیکرد که این تصرف کرده اینو به کسی دیگه میداد این از امام رضا علیه السلام نخر شده مقدار عامل تعارض در روایت اصحاب ما این عامل تعارض است اصل مطلب هم نرساده نشون آدم زندگی نیست و هر حال قبونش بر مشکلات به هر از ایشون نقل شده از این خویج ابن عبد الاوجا عبد الکریم ابن عبد که ظهور حرکتش در کوفه از سال 128 و برای خودش یه حزبیو و به اصطلاح اونها له و اصحاب وجا اما اصحاب این تشکیلاتی بود داشت و حتی به ذهنش رسیده بود که ظاهرا برای نشر زندره و الهاد در دنیای اسلام بهتری جای می کردن در کعبه نشو بود در مکه چون خب در کوفه افراد محدودی می آمد. اما از همه جای اسلام به مکه نمی اومدن رضا میرن مثلا شروع کردن میشد با اصحابش مسخره میکرد هرکیو کعبه و دین و خدا و پیغمبر مسخره این مناظراتی که با امامو سادر داره یه مقدارش ما رو اونجاست ارز کرده هم از 128 این حرکت شروع میشه در کوفه یک شرح های دیگه هم داره که من نمیخوام بگم برزه شسته هم برزه رو یه مقدارش در این کتاب مردم سید و امالی در اول جلد اول امالی داره قابل برای نیست در اینجا و هر حال یک توضیحات بیشتری داره تا سال این ها رو دیگه به علاقه هم میکنه البته باز ناسه همیشه مقضای قضایی عقالی با فن سیاسی علاقاتی میشه تون, تون افراد که هم. هم اینا رو میبنه که نها زنگه ده اونم میگو اینها رو سرگووری یکی از محلی عباسی که از جاتین که محلیه ما لهم بود و تو همین هم همون محلیه است که در روایات معوده یکی از کارهایی رو که محلی عباسی انجام داد زنازره رو کرد کلیه زنان رو من جون خود امن عبد رو دست سودت بکشم از ابن اوجا نغشت چون زندگی به احتمال گفته باشه میگه شما برای میکشید در که من هزار حدیث در حلال و حرام جمع کردم که الان مردم بشه عمل میکنن و جهد منه اینطور نه راست دروغه چه میواز در شرایط متاقعه چه ممکنه یک شوهی میشه حالا این در وارد از در کتاب ما این مطلب آمده که خصوص نرول اوجه اوزه چهار حدیث در حلال و حرام رو من به مردم رائش کردم که حرام بشه انل یعنی این با همون تشکیلات خودش و همون به انحرافی خودش این ها را استراهن زندیکی می گفتن زندیک به فارسی یا زندیک لحرمی دقت بکنی اینجا تغییر کرده قال مالک از صاحر و زندیک که بقیق کرده نگم کافر خود. مقبول مخاطب دا کافر و از ساحر و زندی قنظا حمل دسته و قول او لا استهله غیر مقبوله ولا توبن توبه زندی اندهو این زمان مهدی عباسی مثلا تو مهدی عباسی برقرار بود که آدم خوشیا شو اند این زمان دوره بود اونم در مدینه بود علائن ولا توب ولا توبه چو زندی اندهو انده مالک اون چن شد این عبارت چه بحث کافر نبوده بحث زندگیه بوده که اینا متهم بودن که افرادی بودن که به ادیان قبل از اسلام ایمان آمودن و سعی میکردن در مبارزه با اسلام مثلا به قول خود ابن عبدالعوجاک رئیس اینهاست چهار هزار حدیث سنگه من جرد کردن که الان مسلمان بشه عمل میکنن و یه که این جرد منه این ها اصاس فکر نمیکنن الان یه اگر اگرچه این چیزی رو این خیلیس گفته باشه قطعاً یکی از ادله مهم برای اثبات امامت همینه قطعا احمد علیه موسیقی حافظ شیعت بودن و به نهر احسنی از حدود قرآن و سنت حفظ کردن این برفرض این رو درست باشه من فکر میکنم درستم باشه میگم سنیا نهر در زن امام آمده طبعا جهر نکرن آرونی این هر سری ب خیلی باید که اسلامی احمد برشه چهار بزر حدیثی که اصلا نصب نداره در خلال سی سال بین اوناها جا بیافته خیلی بعید می دارم این مطلب رو از دروغای این شخص می دارم به هر حال بعد وقال احمد بن حنبل و از احمد بن حنبل که اسمی دیارش شنید اصحاقم اصحاق ابن راه وی از بزرگان علمای پقه های به اصحاق کوفه است از ایشون خراسانیه مورد مفاتی ها یا نسبت میگه من پدر مادر در سفر بودن من در سفر در راه دنیا مدنی آمدن یعنی بچه راهی تو راه بودن اصحاب ابن راهوی یک تر صاحب ولم یه تعرضال کفرهی بعد داره و قدرا بازاله که ای من اصحاب بودن اصحاب ما هم صاحب رو نر ما انشاءالله برنادش داخل بشیم اصلش به همین رواده سکونیه در باب قسم صاحب اصلش رواده سکونیه بعد بیشون میتونی دلیل اونا با اینکه اون رواده بوده از اصلا حق اونو دما دماغ با دماغ. نخفوز باشه و من عباها یحتاجه لا شرعه نقطه و دلیل و من اوجب قفلهو استذل و عمر قال اقتلو کل صاحب و صاحب خب فعل اون که حجیه نداره قال الراوي فقتلنا ثلاث سواهر سه تا زن ساحره سواهر هم ساحره زن ساحر رو کشید و حفصه زوجتون نبی نقل کردن این در کتاب احادیث هست لها جاریتون جاریه سن لها سحرها فر بعث الى عبد الرحمن بن زيد حالا شده عبدالرحمن دیگه هم باشه نه زید یکی دیگه فقتلها این راوی به قتل ساحره حالا بعد arz میکنید اینا ارجاع بیشتر به صنعت عمر داده و یدلو علا صحت ما قلناه اما شیخ یه حرفی شما اطلاع یقتر ایشون اشکال بکن در قهر ساله وقت تمسک بکن بیهن اطلاع این اطلاع رو ایشون تمسک در بین نهر صنعت زیاد متعارفه در هر جا که شکل بکنن که قدر یقتر شکل بشه تمسکن بیهن و یدلو علا صحت ما قلناه که لا یقتر ما روی انهو حدیث معروفیست از رسول الله امرتو ان اقاتلن ناس حتی یقولو لا اله فعلا قالوها اصمو اینجا منعو داره اصمو معروفه اصمو در خود به حدیثانه اصمو هم بین پرانتز نشته اصمو منی دماغ و علمال هم الا به حق این حدیث تو حدیثانه زیادیه یکی دیگر چند بار نقر کردن چه پیغنبر در بیژه فرمون و علم و ان اموالکم و دماغ کن و افشار کن افشار بشر. علیکم حرامون که یوم میکنش باشده که یوم میکنش باشده پیشار کنش باشده اصلاح مکام ای مضمون. امش ولذا اهل سنت با اون تمثف میکنن مثل اگه اگر حدش بذین یه باید شلاخ بذین تمثف با اون میکنه افشار یعنی شلاخ هم منبول به این هم تمثف میکنن امرتا انقاط الان ناز حتی فی اضاقالوها اصلا اومدنی دماغ هم به این هم تمسک میکنن لیکن این بیشتر برای قتله اما بیشتر این تمسک برای مطلق که حتی شامل شلاخ زدن باشه اون حدیثه و علمانه انوالکم و دماغ هم و عمشار هم حتی پوست شما بشری شما حرام هم علیکم که حرمتش یوم کن ها فی شهر کن ها فی حرم کن ها تبیر میجوه بله و روی ان نعاشه با از مدبررتنده ها صارت ها مدبله که چیزیزی بوده گفتور که بعد مرگ من آزاد از مرگان آزار بشه ف باعت ها منل ااعرا ازثر م میشه این روایات که در این جمع رو بیشتر جنبه جدری داره یفتتر یعنی جبه ها علیهم نه یفت جبه ها این برای یفتتر جا عله هم بر عرس مسئله بعدی که آخر مسئله بباشیم چونزم بلشی مسئلهیه ازا اقره انهو سهر فقط به سهری متحمده لایجوه علیه القبر که قصاص باشه و بیهی قال ابو هنیفه و قال شافی علیه القبر شافی گفته دلیل اونا اینه لأصل براعت و ضمه و انا حالا من مایی اقتلوبه یحتا جرا دلیل و چند تو نکته نقصه ای که در باب قتل امس قصاص هست باید چیزی باشه که یقتلو به عادتا سهر معلومیست یقتلو به وقد ایمان قد بیان نا ان لای من نا لا یسه ان یقتل به ما لا کسی نمیتونه کسی رو از راه دور بکشه یعنی با فاصله الا ان یسقیه هم ما یقتلو به علال آده نگه یک شده که کشنده است، مثل سن مثلا ولیسه سهر رو بشه یه منداله این طور از روا اصحابونا این اصابنا از کردن هم روز این روز و روات سکنید ساحلر یختر این رووا سکن نیست که صحلر مسیین یختر و ساحلر مشکین دا افته و کفر میدهد. و وجب گفت فی ها به روایه یه ما برفر این روایت قبول بکنیم ان آاض از ساحلر افتصادم فل ار و سحییفی ها به این از ما مفس فل ع کشته میشه نه از باابسه و عدارک و جاافه بعد اگر قایل بشیم به خاطر مفسد بودن خیلی عرضه و سعی در فساد در عرضه مسئله هیفته ادامال عرف و صحف و احسنه لیکن لا عمل رو بیدی عمل نمی کنم یاد دارم عمل نمی کنم لا شعه علیه چیزی برش نیست دقیق بکنیم من شما یه وقت تموم شد بحث از آن نقطه رو اینجا بگم که بعد هر رو انشالله در کتاب شرایع داره و تعلیم و سه نگفت عمل و سه این احبین ریشاش اینجاست اینا یک صحبت داشتن که یعنی قبل از شرایع و قبل از شیخ صحبت داشتن که سه یا خصوصیتی داره که تعلیمشم حرامه کار به عمل من نداره فردا می و سال جواهرم اشکال می که این چی؟ چرا گفته تعلیم و سه این دقیقه مکنه را قال عمل حرف و سه و افسره ها لا عملو به لا شهره و دیگه قال از شافعی و ابو حنیف و قال مالک حالا زندگی هم خود تعلم سر رو میخواد نمیخواب عمل باشه پس یک بس زندگی همونم بس اون چهار داری تأثار زندگی به چی بود و زنادقه اصلا زنادقه از سال 128 در کوفه یعنی ما پس پی که بعد اسلام و بعد ایران و ایران میمثل شد روم و بسبت ها همین این عظمت اسلامی اخت اخت ای هم بود مردان فاسدی بودن. اولین باری که یه گروهی در مقابل مفاعین دینی ایستای کردن زنادقا این گروه حلانی نه این در خانه ها زناده من که در سال 128 سر نهقیام کردن در و بیشترش هم تو ایرانی ها و هم به شیعه منصول شدن اینا در از سر و چه و و هش. این سی سال خیلی اینها انتشار دده کنه این همون زمان مالکه. و قار مالک حالا زنگی کن. این تاریخی تاریخیش دارتو روشن بشه. این زنگیقه بقیده ترفیه داره. گفته که من بردم. اعترافم کرده. تروجه به قطلوه بلا توبه بلا توبه توبه توبه. شد این منتقل شد در فقیه ما و تعلوم استه. در کتاب شبایی آمده داره تعلوم است نقطهش یکی زندیق بودن بوده که مالک بوده یکیش هم اگه در قطع کنه همون آیه هاروت و ماروته چون در قطعه چیز داره وقتر و اوماتت و شیاطین اما ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولیکن من شیاطین کفر بود دقیق کنه این کفر با تعلیم و اگر تعلیم بود اون واسه تعالی این و ما مو ان به باب و و ما يعلمان من احد حتى الا الله يقول انما نحن قسمه بعد من همان. این منشه این شد که سه خود تعلمش قرار گرفت اینجا از مالک این که روشن شد تعلیم و تعلیم در آیه مبارکه چون صاحب جواهر هم زانه فکر هم. لذا اینا به این ذهنی در قرن دوم این مسئله پیدا شد کسی تعلیم بکنه اما یاد عمل نکنه اینا گفتن از این آیه مبارکه اینو ما در که این تعلیم هم حرامه فیلت تعلیمونه بینه همه مایو خرقونه بیهی از مرقه و زوجه باشن شده این یک دو مالکی هم اضافه کرد این یک چیز زمانی خودشه الان زمان ما اینطور نیست که سر علامت زنده باشه این مال زمان مالکه در زمان مالک سر و یاد گرفتن سر علامات زنده بود اصلاً یه وقتی راست تو ایران این وقتی حواله کا مثلا کسی لباس اینجوری پوشه الان این مثلا قرهی قرض داشته یا مثلا موهاش اینجوری یا عینت مخصوصی این میشه هر زمانی در معروف میشه در زمان مالک خود توجه به سه و یاد گرفتنشه خود قبل از مالک میاد خبر اینا شهر نرجاقاس شهر نرجاقاس که داخل اسم مالک شهره مالک معروف به شهر نرجاقاس این داره که بعد در جنگ ایران با فرمانده معروف ایشون دیگه فرمانده معرجه دنیا اسلام میگن خودش متهمی که مجری شده یعنی داخل کتب فارسی که دیده بود دارید از بحث تو خونش مثلا میشه چنین چیزی که خودش متهمه بگیم که زنگی افتو در یکی از همسی این قبل حرکت زن آقای یکی از صحابه معروف جز عشقی مبشر هم از صدی میکرد جز در نفر که وعده بهش بشه رازه شده میگن این اواخر این زنگی رو در کنار هم بود دیگه توی قضایی سیاسی از زمان امیروموین کلن کنار بودی سحنه شماین هم بعد زمان ماریا هم تو زمان بعد از و میگن امیروموین هم چی زند و عرصه ها رو میدونم خدا من سواه فارسی میخوند و مجیس شد و خودم زندگیش شد الان حرکت زنده در حرکت زنده در اون زمان که انما یادگیری سه خودش زنده بود یادگیری سه ترجیح فرموزید لیکن انصافا حق با شیر توسید شیر قرد میکنه قبل این حق با شیر